سلام از بکنم خدمت خانم ها و آقایان قرار بود ما این روز شروع بکنیم از اشعار مثل این این دو جلسه بودشتران یک جلسه درباره. دیباطه هایی که مولانا بر دفاتر مصطبی رو صحبت کردیم و یک جلسه دیگر درباره باره مصطبی هایی که در زمان ما صورت گرفته و متاسحانه هیچیش از این دو بحث حقش ادا نشد و کامل روشن نشد نمی‌رسیم و فکر می‌کنم که اگر ما می‌خواستیم برای هر یک از چه باید بشه برای هر یک از این دیباته‌هایی که به شش ششکانه نوشته شده همون گونه که در مورد دفتر اول کردیم یک تحلیلی برای هر یک از این دیباته‌ها ارائه بدیم خب چند زلسه تور و همینطور اجاد درباره اون بحث هایی که در جلسه گذاشته اشاره برگزار شدیم بحث هایی که بیشتر محصول نیمه دوم قرن بیستم در اروپا و امریکا حرف هایی، صحبت به یارهای نقده مدرن ادبی میتونه کلاسیک نظریه های نظریههای نظریه های روانش, روانش،, روانش از این دویر کارهایی شده کارهای خوبیم شده کارهایی چه خوب باید عرض شناخته بشه ولی باید موقعیت و نسبت این کارها به مصنوی کاملا روشن بشه مصنوی یک چیز است و خوب اون مسائل در طای خودش خیلی خوبه فرقه به که برای تقریب ذهن عرض می راجب این مسائل نیست راجع به هست بلی راجع مسائل نیست حرف کنید که مرحوم مرحوم فرداد تحقیقاتی کرده بود راجع به آوری های مولانا درباره باره و اوزان عروض فارسی خوب این در جای خودش مصنبه بسیار خوبیه ولی مصنبی مصنبی یک چیز دیگره ارتباطی داره به مسئله مثل همین بحث تازه هم از این گوید فضل فمایی زشتی الان م... کار بکنه به مولانا و قافیه قافیه در مولانا او در عروض در مولانا کار شرده یه قافیه در مولانا کار بکنه و خیلی جالبه ولی مسلمی یه چیز دیگری است در حال ما چون گل دادیم که این هفته شروع بکنیم اون مسائل رو برو داریم چم, چم و به تدریج چه پیش می داریم مطرح بشه و زین آشنا بشه ما معتقدیم که این نگاهی که ما داریم به مسئله تا حالا سابقه نداشته و این ادعای جذافیه ولی خب برای ثابت کردنش خیلی ما آماده‌جی داریم و شما متقه خوصله داشته باشید خیلی خوبه چون تمام این چیزهایی که چی نوشته شده حاضره و ما معتقدیم این اون که نوشته شده لاعکر از نظر مردم این زمان پرت است و بی ارتباط است به مسائل مولانا و هیچ کمک نمیکنه به روشن شدن نظر مولانا موقف مولانا مولانا کدا وایش شده و چی میخواد بگه ما معتقدیم که برای این کار مراجعه به آثار خود مولانا در درجه اول کلید در خود مولانا و در آثار مولانا در درجه اول و بعد هم در مقالات شمس اون چه راجع به مقالات شمس دا آقالا صحبت شده شروعش شروع باز با دیشترات این مولانا که مرحوم فروزانفر بود در اون مآخذ قصه های مصنبی ایشون قصه را که در مصنبی آمده و اینها در نقالات هم وجود داره اینا را توجه شدند و مروی شد. ولی مسئله به همین جا خط نمیشه و به همین ارزونی تمام نمیشه که ما میدیم بالاخره خوب بر این, مز... این قصه ها رو مورونا از خودش در نعبوده خودش قصه نمیش نموده غالبا از یک های گرفته دیشه حالا از مگاراتم گرفته چرا نسبت مقالات به نسبت ویژه و قابل توجه خب اگر این به چرا مولانا از قضاری گرفته یا از کنونسی از ویس و گرفته خب این یکی رو از مقالات شمس رفتی چرا این فرق میکنه فرقش از این لحاظه چه فقط این نیست چه گسته میگیره از مولانا از شمس شمس برای مولانای چیز دیجاریه. یه یک موجود دیجاریه جرچه اخیرا دیدم که در نشریات خیلی مهم و رسمیه خود فرانستان هم اونجا چیزی هست یه چسی گفته چه این شمس مخلوب خیال مولانا بوده بعد از, از اینکه این همه گلیون چشیدند و چایی دادند و روده خوندند و فلان صبح یارو میگه کستند ازایی چی بوده؟ از خان محضرتون مشعله نیست که سر و مولانا از شم صرفت جهانبینی را از شم صرفت تمثیلات از شم صرفتی سخن تبیرات و نگاه نگاه را از شمصفته. اون نگاهی که شانس داره اون مهمه اون انتقال داده به این مسائلی که کم وقتی دلو میریم براتون روشن خواهد شد من الان شروع میکنم این مسلمی رو به مورسی و ممند شروع کردیم که دیباتش رو خوندیم ولی خب شعرش را هنوز با درش نشهدیم امروز با شعرش رو می برای اینکه گل دادیم به گولمون و خوش شده باشیم بشنو از نی بشنوی نی چون شکایت می کند. از درائی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده در نفیرم مرد و زن نالیده سینه خواهم هم شرح شرح از تراب تا بگوین شرح درد اشتیاق هر کسی کردور مند از اصل خیش باز دوید روزگاره وصل خیش من به هر جمعیتی نارون شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من ندست اصدار من سر من از نار من دور نیست یه چشن را اون نور نیست تنز جان و زنز تن مستور نیست یه چشن را دیده جان دستور نیست آتش هست این و نیست باد هر این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است چند در nei fidad عشق است چند در nei fidad از یاری برید هر تهاش هر ما موترید هم تو نی زهری و تریابی چه دید؟ هم تو نی و مشتابی چه دید؟ نی حدیث راه پرخون می کند گسته های عشق مجنون می کند؟ محرمین این هوش جز بیهوش نیست. مرضزبان را مشتری جز هووش نیست. در همه ما روزها بی شد. روزها با سوزها همراه شد. روزهاجر رفت او رو. پاچ نیست تو به من آن چطور تو پاچ نیست هر چه, جز آ... هر چه جز ماهی به آبش سی شد هرچه بیروزیست روزش دیر شد در نالوبات حال فخته هیچ خواه پس سخن کوتاه باید رسلا این شده بکیش که مطابق روایت اینچه ما داریم روایت اینشه همون طوریشه مولانا در مقدمی که روز اول خوندیم خدمتتون مولانا اونجا تصریح شده که مسئله را به اشتدعای سام ساخت. اون قصه روایتی که داریم حکایت می کند از این که روزی سام در خلوت میاد پیشناد میکنه مولانا میگه که این در خانگاه رفقا میان دوستان میان درابیش مشغول الهی نامه صناعی هستند و مسیبت نامه و منطقه دیر اتار پیشنهاد میکنه میگه ای کاش شما این همه قتل سرودید یه چیزی به شیوه اله نامه به شیوه حدیقت و حدیقه اما در وزن منطقه دل مصیبت نامه شما چیزی میساختید و خیلی خوب شد مانو نامیده که تصادفا منم یه یعنی تو فکری داشتم و حالا ببینید دستی برای از این چیز امامه که پاره کاغذی توی امامه ها بزرگ بودن و لای امامه های جیب به کار می بود کاغذی رو این بود اینجا در این هیجده بیت بود این رو میخونه میگه میمین چه دوزه ایست و این هیجده بیت همینه چه این هیجده بیت بعد هیجده بیت دیگر یا چهارده بیت دیگر بیت 36 و اون زرجه رو عشق چنیزت شروع میشه بقیه یه یا تتمه یا دنباله این 18 بیت را مولانا 14 یا 18 16 بیت دیگری سروده تا قضیه را به لحیم بکنه وصل بده به که در چتاب خواهد آمد خب اینا خیلی مهمه اولا جازه به 18 بیت صحبت میکنیم این 18 در این 18 بیت بسم الله الرحمن الرحیم ما با مولانایی مواجه میشیم مولانایی که یعنی دو چیزه وید از یه بزرگ بولانا یکی سنت ششنی یکی نواوری ما در همین بسم الله الرحمن الرحیم هر بشنوید نه بشنوید نه چون ایچگاهیت می کند ما مواجهیم با یه آدم سنت ششن و در اینها یه آدم نواور دو چیزه مختلف یکی دنگه چیونچه سنت بکنه ولی چیزی نهشته باشه عرضه بکنه سنت میکنه و نوع میکنه نداریم در هیچ چتابی پیش از این من سراغ ندارم کتاب را اینجوری رو کرده باشن کتاب را شروع میکنن همونطوری چه عطایش رو کرده سنایی درست رو کرده یا نظامی کاغانی تا خود شاهنامه وو دارم تا بیسر آمین هر چه بوده چتاب قسطر مثلا چهیده بوده هر چه بوده کتاب اندولیس بود نمیشه چتاب ها خود یه قایدهای داره، حسابی داره که خب ببین اول اون سن نقشی کنی اونو میذاری زده ما یه معلیفی اصلا اعتراض نمیکنه، کنه با این که چجوری گرار اینه چجوری شروع کنه دوم نوآوری هیچ کتابی ما نداریم که با مسئله نی بشنه این هم شد مسئله هیچ کتابی شما نداریم این اینجوری بیاد و این حرفش رو اینجوریش رو گفنی و این نی اون سنت شدی و این نو آوری خیلی جالیمی که میدونید ما الان ما با همهت چندتا تا از دوستانمون این تصدیه مستوی رو دنبال میکنیم کنیم چه انشالله شده و در مرحله چاپش هستیم انشالله چاپ به دستون میرسه لا فش می انشالله در همین سماهی که بنده سال جاری در اونجا خواهید دید که ما اساس کارمون را قرار دادیم در درجه اول بر مصنویهایی که در پونزه سال اول بعد از رهلت مولانا نوشته شده بعد خود به توسعه دادیم و هایی در پوزده سال بعدی هم نوشته شده یعنی مزموم هست سی سال ما اونا را هم در حساب گرفتیم و ما برخوردیم به این چه مثلا اون مسلوی چه وقت به بولانا هست و آقای سروش اون را تاب کردهاند. و در گلیه هم اون رو تاب کرده هم. در انگره هم اون رو تاب کرده هم. همینطور بزرگانی که در مصنوی شهر ناشتن بدهه مثل مرحوم شهیدی بر اساس اون رفتن این خودسان گفته چه وقتی او آمد دیجه خوده خود گلپینالی گفته وقتی اون گلپینالی بر اساس نسخه دیگری شروع کرده بود کار ترجمه به ترچیه مصرمی را وقتی او را پیدا کرده دیجه او گذشته گذاشته چنابا اون عبیات اضافی را رسلا علامت گزاری شده سینو زاید خب ما این خب ما این نسخه را وقتی نگاه میکنیم، این نسخه چه نسخه بسیار معتبریست خود نسخه بیش از تا واریاند داره یعنی پیش از یا یادداشت در رواشیز است به خط خود کاتب خب اینا نشون نشان میده و بحث هست در اون مقدمهی چه درشته شده خواهید دید اینا روشن میکنه که چه این بحث ها راجع به بازبینی و بازخانه مصنوی و تنگیه و تصیح مصنوی وی راستاری در زمان خود مولانا شروع شده و کار میکردند و اینا اون یاد داشته چه پیشنه آدادیست چه میشده بعضی از پیشنهادات مورد قبول قرار جرفته علاقه منفه داره بعضی ها گفتن چه خب حالا این دوره میشکن بر این مثلا نسخ بدل نسخ بدل اینه چه بدل دیگه این دوره میشکن اون دوره میشه بود علایه ها اون چه میخوام عرض بکنم اینه که راجع به این 18 به که در پیشانه مثلا این جایی گرفته ما مطلقا واریانت نداریم چرا؟ من فشم میکنم دیگه اون فشم برای این چشم میکنم چه؟ اینم اونانا قبلا تثبیت کرده مفت را این مال جمعان قبل بوده بعد دوستش هم از احمامهش آورده این دیگه شده است هیچ بایاد نداریم مطالب دیگرش دار اون باز اون شرحی که از افراچی خوندم هم در اون جلسه قبلی چه میگو چه دیگه مولانا شب روزش مصنوی بود در حمام میرفت در سر نهار بود، در شاب بود، در خواب بود در راه میرفت در مدرسه بود همش در فش مصنوی بود یعنی مصنوی تمام زندگی مولانا را قبضه کرده، بنابراین مصنوی بیشت ساخته شده مولانا آماده می‌کرده و شب این آقای سعودی میآمده و این دشته میکرده مینوشتند و شما میبین در همچون چیزی چند نوع خطا ممکن است راه پیدا بکند یکی خطاهای تلفظی وقتی مولانا املا میکنه که آدم گاهی چلمه را با یه چلمه دیگری بدون این خودش متوجه باشه عرضی میده و خطاهای شنیداری بر را پر میشنه و خطاهای نوشداری من خودم وقتی می نویشم. الان جنگ علا تا هم دیاد شده پرینچ دون پونتولی یه <تصفح> خودا چندتر شده می جیلن. بینم اه من بعد حالا دیگه وقتی که از روی اون نوشته یک کسی دیگه نقص را دیگه همین جور و یا این که اون میخونه لحکت دیگری بدتر یاد میکنه شما بیرید این خطاها که اتصال میشه و بعد تعدادش می افضوعید. ولی اون 18 بید که خودش نیشرفته نشسته خودش نوشته ما واریاند در اون نسخه ها نداریم نمیگم در نسخه های تازه ها در نسخه های تازه نویس نسخههای نو نویست که بعد از اون سی سال اوله ما به قول مرحوم میروید ما هیچ بیت از مستبی نداریم که همه متفق باشد هر کس آمده ی چیزی گفته دیگه ولی در اون، در اون نسخهای که در اون زمان نوشته شده که ما معتقع شدیم بر اینکه نسخه بدلهایی در اونجا پیشنهاد شده مال مرحله ویراستاری مصنوی بوده در حضور مولانا در حضور خوده سان اب مصنوی و این و اون بحثها که اونجا بوده دارن مثنوی را دست ها تنگیه می کنند کنن و این عبارت ها رو ما معنی کردیم در این مقدمه ایچه داشتیم چون این بعضی از عبارت ها بسی گفته شده بین ما معنیش از دست داده ما می دیم میکنن، می میکنن، تنگیه می درست متوجه نمی چی یعنی چی کار می کنند کار می وقتی معنی روشن بشه آ این عبارت است از کردن این تمرین اینه چه سبو کردن حرس کردن یعنی اون چیزای اضافی رو بزنن و ببینید و درست بکنن عبارت ها رو از بکنن درست بکنن درست معنایی که اون میراثاری واقعی باید داشته باشی که الان بین ما نیست داستان ما ویراستوری با بودی که داشهای ویراستوری برقرار شده در جام در گفته میشه کمک میکنم میخوام کمک بکنم برای ناشیرین که بفهمند که ویراستوری یعنی چی ولی هنوز به اون مرحله نرسیدیم که ویراستوری اون معنایی که ما در این عبارات میبینیم تصحیح و تنبیح مانعه به این صورت میبینیم برحال خیلی می این برحال ده بیت بنابراین اینش سی شش بیت یا 34 چهار بیت پیشش رو قصه زرجر و چنیزت تقسیم میشه بر دو قسمت قسمتی که مولانا اون هیچده بیتی که از لای امامنش در آورده قبلا گفته بوده و اون 16 یا هفده بیتیجه بعدا اضافه شده تا این وصل بده به اون قصه زجر اون قسمت اولی هم ما وقتی تعمل بکنیم میبینیم دو پاره است دو قسمتی قسمت اولش نش که داره شکایت میکنه من اگر بخوام اگر میدونستم اگر حوصله داشتید هاگان چیز میستو شاید تزی وقتم باشه ولی اگر حوصله داشتید خودتون ما شاء اهل دیگه خودتون برید اینایی که به همین هیچ ده همین اول مصنبی شرح هایی چه نویشده اینا رو ببینید به اون عرایی ایچی بند زلسه گذاشته ارز شرطه بودم یادتون بیاد و یه مقایسه این بکنید در این باره. شما ببینید از اون شرحی چه خوارزمی نوشته نویشده خارزمی اصلا یک کتاب مثل گیسری یک چ... یک کتاب نوشته به عنوان مقدمه فسوس که حالا اون کتاب تدریس میشه خود فسوس بهش نمیرسن غالبا هم مقدمه رو را میخونم یه کتاب قطوریه مقدمه اشته چی پیش از این... آقای خارزمی هم همین کار اشته مقدمه کتاب مقدمه اشته بر این چه. پیش از این چی شروع مستقی بکنم اونو بخونند بعد میرسیم آقای جامی جامی همین چند اول را قصه ها گفته کرده خیلی معروفه بعد از جامی هم هر چه آمده رفرنس داده به او بعد همینجور شما میکنی که تا خاتم فلاسته ما مرحوم سبزواری و جنوالخادی سمسواری ببینید هی که را همین آغاز مستوی بعد برید در اونوره مرد بینید که انگاروی چه کار کردی؟ چه چیزان میشتوند بعد میبینید اونوره در شپگاره ببینه محمد ولی چه کار شده محمد افصال آخر اون آقای از اینایی که نسبتا جدیدترن بحراللوم یکی هم که بحراللوم رو تاب شده بنده تعریضیم داره که گفتن که مرموم تروزانفر وقتی چره مستمی را می شر شره برلوم تلوه پوش باز بوده و چرا اینجا اعلام نکرده تره نگفته جایی یعنی مثل تروزانفر از اون مثلا خب خب حرکتی که جاتب نزدنی کار می‌کنه. کارهای قبلی دیگران رو ببینه دیگه اینچه گناه نیست ولی این دیدن تا اینکه که آقا ولی اون را درسته و من از اون را برم اون مثل به یری فروزانفر گفتم باد میگویم موفق نشد این شرحش را از اماسید دفتر اول فراتر ببره اجر فراتر می بود. خب یک چیزی بود یک کاری بود که دیگران نکرده بودن کار مهم می بود ولی خب یه دولتی از مولانا دوستان فوت شد مفوت ایشان. در این هیزده بیت گفتم چه ما دو بند میبینیم بند اول حالا گذاشته از اون چه دیگران چه گفتن رو به نی چه چیزا بحث شدن اصلا دیدنی دیدنی واقعا یک ساخونه حرف نوشتن ولی ما از اونها دیگه فراغت داریم و ما فکر میکنیم چه نه مول نه همین نهیچی میزنن. چوندی به همین می، نه نه میکن. میکنی و این نه همین نه چون شکایت میکنند نه چی میزنند و میکنه شکایت دیگه و این نه حکایت جدایتون نهی را از نیستان بریدند از جدایی ها شکایت میکنند چ از نیستان تا مرا بریدند آ این چیده خیلی ساده و روشن را ای در خدا یا خدا يا برد برد برد چه چیزهایی نگفتن؟ فوق و ا کنم زورتون که قسمت اول زبان حال نه سینه ها هم شرح شرح از تراک تا بگویم شرح درد اشتیاب. فرکسی کو دور ماند از اصل خیش و تمام این درد هجران درد درد جدا افتادن از اصل باز و روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم زفت بدحالان و خوشحالان شدم اشاره است از مولانا بر این نه موسیقی هم در عذاب و هم در هم تسلیت میده و هم شما را خوش میکنه زفت بدحالان و خوشحالان شدم یعنی هر دسته چه اونهایی که مرفه بودند و شاد بودند و می شادی دنبال شادیشون بودن چه اونهایی که ماتمی داشتن گرفتاری داشتن و محتاج تسلیتی بودند من به هر دو اینها رسیدم من به هر دو اینها کردم هر کسی از زن خود شد یار من اون که ماتن داشت با صدای من به گریه افتاد زد به گریه و های های میگریست اون یکی که شاد بود به نوای من به رکس برخواست هر کسی از زن خود شد یار من از درون من ندست راه من سر من از نالی من دور نیست در این چشم گوش را اون نور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست یکس را دیده جان دستور نیست اشاره بینید که نزدیش بودن چیزی و بدیهی بودن چیزی خودش موجود میشه چه ما اونا گمش میکنیم محتوط نداشتیم باشیم با وجود این جان برای تن نزدیتر این چیز دیگه ولی ما در دسترس ما نیست اشاره اشاره است <تصفح> خب در این بند اول این شکایت نی شکایت نی از جدایی از فراق او فرا ناله می کنه ناله اشتیاق یعنی باز می‌خواد پروازه بود به پیوندد بنابراین بند دوم بند مربوط به اشتیاقه مربوط به نی دیگه نیست آتش هستین این بانجنایو. نیست باد این صدای این, این نالیی که آتش هستین این بانجه نیست باد پرچه این آتش نرارد نیست باد ببین مولانا میخواد اینجا اون آتش عشقی که اساس بحثشه این آتش اون آتشی که هرچه ندارد نیست بعد اون آتش اشکه نه اینکه آتش نای نیست آتش عشق از چندر نیست داد دوشش اشک چندر میفتاب کتاب نی حریف هر چه از یاری برید هر کسی که از یاری درفت و دور افتاده نی هم زبان اوست نی ندیم اوست نی حریف اوست همزانوی اوست با او منشینت ترت‌ها و اشک ما درید با او هم دردی می کند همچنه زهری و تریابی چه دید باز همون چیز هم. هم زهر هم تریاب ببین هم درد را بیشتر مشتایل میکنه آتش درد را هم آتش میزنه، دامن میزنه بر شعله درد و هم تسکیم می بخشه. تسلیت میبخشش شما پس هم زهره هم تریابه همچنه زهری و تریابی چدید همچنه دمساز و مشتاقی چدید باز این حالت متنابضه ها هم دمساز هم با من نشسته هم چیم؟ مشتاق چون مشتاق معنی چی میشه با من نیست دور از منه میخواد به من برسه این اشتیاق ببینید این دو حالت چه در موسیقی در شما میبینید که در نه جمعه نه حدیث باز باز پسه اون آتش عشق میفته نی حدیث راه پرخون میکند قصه های مجنون میکند نه فقط نالی خودش نیست تمام ناله هاست نالی هر اشکی نالی همه, همه اشاگه قصه های عشق مضمون می کند محرم این هوش تو بیهوش نیست مرزبان زبان را مشتری تو گوش نیست زبان چه حرف میزنه گوش حرف نمیزنه گوش آجد از حرف زدن. گوش زبان نداره مشتری زبان فقط گوشه که میشه و محرم این هوشم فقط بیهوش یعنی از این حوش آری باشه یعنی این عقل را باید در برای این عقل دوست حالا شروع مصنویه از این بحث ها خیلی خواهیم داشت در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها جرفت برو آچ نیست تو به من آنچه آن چی تو پاک نیست هر چی دوز ماهی ز آب سیر شد ماهی شد آب سیر نمیشه هر موجود دیگری غیر از ماهی زود از آب سیر میشه هر که دوز ماهی زوابشتی هر که است، روزش دیر شد اون کسی که روزی بهش نمیرسه دلش میگیره ملال میگیره که روز تمام نمیشه برای آدمی که بیروزیه روز تمام بشون نیست در نیابد حال پخته هیچ خواه پس پت سخن کوتاه باید و سلام این هیچده بیته حالا من یه آسی بکنم بعد برگردم به این های بعدی اون که اول اشاره کردم که مثنوی را باید خواند در پرتو مطالب دیگر مولانا چه در مثنوی و چه در فی موفی و چه در دیوان و نیز در پرتاب اونچه در مقالات می میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم ما مقالات شمس را دست میگیریم ما اونجا در مقدمه مقالات اینجوری گفتیم اینجوری گفتیم چیانه یعنی جایی ما سندی نداریم ولی اینجور به نظر ما آمده چه مثل این که مولانا تمام مصنوی شرح و تفسیر مقالات شمسی به نظر اینجوری میاد انقدر ملتظمه این آدم به زیر و هست این مقالات که در دست ماست البته همه مقالات شمسی نیست اون مقداری که به دست ما رسیده یعنی اون مقداری چه شمس با مولانا صحبت داشته با قسمت اعظمش به دست ما نرسیده فقط بعد از اون جلسری بعد از اون جریانی چه اتفاق افتاد چه شمس گرچن رفت حلب حلبی حلبی چه روزش می میخونید این روزا بله و مولانا پسرش رو فرستاد با جمعی و فلان این آوردن وقتی آوردن دیگه این دفعه این امکان براش فراهم بود که در جمع صحبتهایی بکنه و اون هاش یادداشت شده به این صورت گذست پاره به دست ما رسیده است این نیست هر چه مولانا و شمس صحبت کردن دست شده باشید نه ما نمیدانیم ولی به هر حال این هست ما ما, ما هستیم ما مقالات شمس را دست میگیریم اینن میبینیم این سندت ششنی در اون هست ایت شروع کار یه نامه چه می رویدن با الحمدلله رو نم دارم سلات و سلوات و نم دارم اینجوری شد نامه های خصوصی هم اینجوری ها می نا... لو اگر نامه های رسمی اینجوری شد فیدوسی در اونتا نامه ایچه هست بودوباه عرف ها به از سعد و قسمی رسطن به علیم جوندو از سلوچه دیش دوره اوندو میبینیم چه سلیدین گفته و از جهنم اونم در بیش و همه این خواب برحال ما میبینیم این سن سنده چی رو در اونجا چه دوری سلونشه اگر از جست بگذری و به زن رسی به حادثی رسیده باشی بسم الله الرحمن رحیم شروع سروع مدالات اگر از جست بگذری و به زن رسی به حادثی رسیده باشی از کدا یابد حادث قدیم را مال را ببرم به لرقا این شروع می ما این بند را درست میخونیم میبینیم که این بند سه مطلب داره چه چیز میخواد بگه این چیز میگه چه میان حادث و قدیم ارتباط نمیتونه حادث نمیتونه ارتباط حاصل بکنه با قدیم حادث چی داره میگه حادث یه جسمی داره و یه جانی داره حالا جان را اگر بخواد بیاره در میدان جان چیه؟ جان خودش چیز حادثیه میگه میگه حادث چیزی باید بیاره در میدان وقتی آدم میخواد کسی رو پیش کسی بره یه چیزی براش میخواد ببره چی میسه برد میگه هر چه ببری اونجا داره زیره به شرمان بردنه میگه هر چه اونجا بخوای ببری تنها یه چیزی اون نداره چی تو داری و اون نیاز است خداوند نیازمن نیست خداوند نیاز نداره تنها چیزی که چی نداره نیازی تو نیاز باید ببری این این دو ببینید اول این چه تو چیزی نداری حادث با قدیم نمیپیوندد دوم این چه حادث چیزی نداره عفر بکنه ارزه بکنه مجر نیاز وقت می تو چه نیاز نمودی تو چه نیاز بنوایی. از قدیم چیزی به تو پیوندت و اون عشق شما ببینید کاری ندارم که که کسی با این جهان میلی موافق مولانا، کاری اصلا به اینا میخوام ببینم که مولانا در کدو ایستاده و از چه منظری نگاه میکنه. ببین فرض میکنی مثلا مثلا فرض میکنی حالا برای این چه زهر ما نزدیکتر باشه فرق کنید یه آدمی مثل تانسکی خب یدی با موافقا یه تیم و, آدم... و یه آدم فرزانه ایست آدم بسیار روشنه آدم معمولی نیست این آدم فرز... فرش بکنی که الان فرض کنیم فرض میکنیم یه دستگاه فیلمبرداری برداری و دستگاه عکاسی بردار و بره به سوریه و یا از اونجا یپورت هایی میده بحث این نیست این آقای تامسکی یه موضعی داره و ما با اون موضعش موافقیم یا مخالفیم بحث اینه چه این آدم هر چه میبینه به هر چراپورت بده جالب خواهد بود علی این چی یه همچون چیزی است ببین اینکه مولانا در کجا میخواد وایسه و از کجا نظاره میکنه اون برای ما اینقدر مهم نیست مسله اینه شهر شهریار هم یه شهری چی از اون به گوله اگر مرخوب فروزانفر بود نگد قرار اشعار فارسی به نظر من یکی از چیزهایی او اوز به اصلا فارسی قرار داره این چیز شهریار میگه گر از این چاه طبیعت چه جهان من توست به دراییم جهان جمله از آن من توست آسمان پهنه خانی چه به پای من و تو مهر و مه گرسه نانی چه به خان من توست ببین تصویر آدمیزاد اینجوریه در چاه طبیعت محصوره از این چاه طبیعت چطور میتونه بیاد بالا از قدیم چیزی به تو پیوندد و اون عشق است اون تنابی است که از آسمان میاد که تو را از تایتا بتونه بچه بالا و تو خودت را باید بپیچی به این تناب من مل... مسئله قدیم چیزی به تو پیوندد و اون اشک است دام عشق آمد درو پیچید چو یه بونه ها تأثیر یه هم هست قرآن آیه داره میگه چه اینا خدا رو دوست دارند و خدا اینا رو دوست داره میگه اینا چی هنچون خدا رو دوست دارن یعنی هنچ میگه این با ماداد با بازتاب دوستی خداست است خدا اینا را دوست داره یه و یه بونه. خدا اینا را دوست داره اینا را, او را دوست پس که اول از آسمان میاد این رابطه محبت اول از اونجا میاد اول از سوی بالا میاد و وقتی او میاد چه تو؟ کمال نیاز را از خود نشان داده بودی. نیازمند نیاز نیاز مند, نیاز مند نیاز این بحثی که در شمس خیلی شمس و مولان را خیلی روشن کردن چه تا نیاز نباشه اون اون تناب عشق از آسمون نمیفته وقتی آمد از اون قدیم قدیم را ببینی و هوا یدرش و چون در گران آمده چه لا یدرش و هل اپسار چشم را و اوس چه همین تشما را می بینه همینه میگه این اون تناب از آسمان میاد این از تمامی این سخن چه تمامش نیست اله آیا و آمد تمام نخواهد شد این اون چیزی است ببین موقفیست که به اصلا شمس درست میکنه و در اونجا از اونجا داره نظاره میکنه و مولانا هم از همونجا رفته و نظاره میکنه حالا چطور ما این را در این ابیات مصنوی می بینیم شما بیرید هشت یا نهم بیت اول شکایت نامه نه است و از بیت نهم یا دهم بخش اشک در میان می آید چه آتش اشک استند در نیف تاب دوشش اشک در میف تاب. و بحث ادامه یابد تا بیت 35 و 36 که قصه عشق پادشاه و چنیزت شروع میشود و اون اولین قصه, قصه مصنوی است آخرین قصه هم داستان شاهزادگان است و عشق دفتر و عشق دختر پادشاه چین که به دین ترتیب مثنوی با قصه عشق آغاز میشود و با قصه عشق پایان میپذیرد. ولی که صحیح را پایان نیست الهی اوجگی او تمام نخواهد شد و از انداش مولانا که آخر را ناتمام میگذارد، یعنی انجام و فرزام شادسه سوم در اون که آخر معلوم نیست و مولانا به گوان من اون گسته را عمدن ناتمام گذاشته و در جواب سلطان ولد کی می‌پرسد چرا نمی‌خایی قصه را به پایان ببری میگوید دیگه نمیتونم میگه شطرم اینجا زانو زده و دیگه من نمیتونم بکنم باقی این قصه را اون چسی که طالب باشه به زبان بیزبانی از من میشود یعنی باقی قصه خاننده به اندازه دریافت خودش خودش باید باقی قصه را بسازه که سر رو باید خودش فیز بکنه ببید گفت چه دام عشق آمد و دروفی پیچید مولانا را میخونیم عشق جانان مراز جان ببورید جان به عشقندرون ز خود برهید زن چه جان محدث است و عشق قدیم هر جزین در وجود اون نرسید حرف شمس ها از کدای آبد حادث قدیم رو. زن جان محدث است و عشق قدیم از قدیم چیزی بر تاید و اون عشق است جان محتس است و عشق قدیم هر این در وجود آن نرسید عشق جانان تو سنج مقراتیست جان ما را به گربه خیش کشید باز جانان زخیشتن گم شد جان تو گم شد وجود خیش بدید بعد از اون باز با خود آمد جان دام عشق آمد و در او پیچید همون مثل یا چه شمساورده مورونا در قذرش داره میاره شد از حقیقت عشق جمله اخلاس ها از او برامید به نظر من برامید غلطه به نظر من به جمله اخلاس ها از او به منبع تمام اخلاص هاست این عشق میجه مولانا میجه در غزلیاتش خدای عشق فرستاد تا در او پیچی ای ببین مجرم قدیم چیزی به تو پیونده در اون عشق است، بله دامه عشقامه در او پیچی ما در غزلیات مولانا می‌خوایم. خدای عشق فرستاد تا درو پیچی که نیست لایق پیچش ملک تعالا را میجه میجه او اینقدر لط داره چه اگر یا تو باید بمیری یا او باید بمیره اینقدر لط داره چه اگر برای او مردن میسر بود او میمرد اون نمیتونه بپیچه نیست لایق پیچش ملش تعالی را اون نمیتونه بپیچه اینه که این دام رو میفرسته تو باید بپیچی و تو باید بری بالا ببین شما با این چیزی که با این بحث کوتاهی که من آبودم درباره مقالات و این اکاس آن در مولانا حالا بر گردیم اون قسمت دوم این ابیات مستوی را می خودیم قسمت دوم ابیات مستوی در باره عشقه طبعا بند بکسل باش آزاد پسر چند باشی بند سیم و بند ذر جر بریزی بهر را در کوزهای چند گنزد قسمت یچ گوزهای در کوزه چشم پریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پردر نشد هرچرا جامز عشقی چاچ شد او زهرس و ای کلی تاج شد شاد باش عشق خوش صدای ما ای طبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و زادونوس ما جسم خاک از عشق بر افلات شد پوه در رقص آمد و چالات شد اشت تور آمد آشقا تور مست و خر موسی شائقا با لب دمساز خود جرد زفتمی من گفتری ها گفتمی هرچه او از همزبانی شد جدا بی زبان شد جرت دارد صد نوا. چون چه گل رفته و گلستان درگذشت گذشت پس اون پسته بل بل معشوق است آشق پرده ای زنده معشوق است آشق مرده ای چون نباشد عشق را پروای او او تو مردی بی بیپر وای او من چگونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد نوری آرم پیش و پس عشق ها که تو هم بیرون رود بیرون بود آینه غماز نفوت چون بود آینه دانی ترا غماز نیست زن زنگار از رخش منتظ نیست در این قسمت شما بیدید مولانا ظاهر از اینه که مولانا اینجا یا گسیده گررای در باره عشق میسازه به بید این قسمتی که از زامی گرفته شده میگن که این 18 بید یا این 36 بید نینامه است نینامه نیست این اشتنامه است و تمام رسلی اشتنامه است و این اکننامی کوچ اول فهرست اون اشکنای بزرگه اصلا بحث بحث اشکه، بحث تنابی از قدیم چیزی به تو پیوندد و اون اشک، فقط با این میتونی خودت را از این سااح طبیعت نداد بدید بحث اینه سر تا پای این ای اونایی که میگن ممسین؟ معلوم نیست چه میجید همدران قبلن نمیدرستی اصلا قبلی نیست فش که نیست یکی دیگه چا. خیلی درست کامه روشن چک بعد فش قبلی هست موزه قبلی هست حالا چتی به موزه موافق باشه موافق باشید باشی مهم نیست بعد اون اوسه یک فردانه یک آدم بسیار باهوشی داره نگاه میکنه در زندگی و اون فرکیل میبینه میگه و اون با اون نگاه نافذ نگاه فوقلته بیرون یاره فوقلته نگاهی که هم تمام یاد را ثبت میکنه این خیلی عظیمه خیلی مهمه مسئله همون چیزی است میگه ببینید در اینجا عشق در این چند بیتی که مولانه گفت عشق دو تا خصیصت دو ویژدی داره عشق پالایشگر عشق معراججر عشق پالایشگر تهذیب هر کرا جامز عشقی چاش شد او کلی پاک شد با عشق عشق تحضیب می عشق پلایشجر تمام زنج ها را میزداید تمام ها را از بین می برد شما در اون بیباته اولی چه کندیم یادتون مولونا گفته بود چه سامدین از اولاد همون آدمه چه گفت چه از همسه ای تو کردیم و از بحتو عربیم و ما برایش تفسیری تفسیر گاهی شدیم یادتون باشه خب مولونا بعدن در همین دفتر اول این مسئله را باز مطرح میکنه ببینید میجه که سر امسین آلکردیان بدان راضه از بحنا عربیان بخوان، بی صحیحین و حادیث و روات بلچه اندر مشرب آب حیات ورمثالی خواهی از علم نهان گسته بود از رومیان و چینیان رومیان و صوفیاننده ای پدر بیز تچرار و کتاب و بیهنر لیک سیگل چردندون ها پاک از آز و هرس و بخل و ها پاکزاز و پرس و بخلو چینه ها این تحضیب. تحضیب نفس قدم ولی در اون یکی در دفتر پنزون وقتی شروع میکنه اون تفسیر آیه ای را که در ابراهیم هست که آیه ابراهیم بهش آمد که این چهار مور را بگیر بکش و سوما سرهن فسرهن فجعل الاغ كل جبل مینهن جزءا فسرهن یعتین چه سعیو چهار تا مغ رو میکشه و به هم میکنه و بعد هر کسی چرا در یکی از چهار دی... پوه اطراف شهر میذاره بعد اینا رو سوت میذاره اینا رو میخواد میون یا اینکه چه سایه پرواز میکنن میون رسویی مولانا این را تفسیر کرد اونجا اون چهار مرد نماد چهار خوی هستند که اون خوی ها رو را باید رام بکنی در خودت اون چهار بعد تارمو رو باید از بت و خروس و تاووس و زاغ بعد مولانا اینا رو تفسیر میکنه بعد ترس است و خلوص اون شهوت است زاه چون تابوس و زاه اون است ببینید مسئله تهذیب نفس تاش کردن خود از آلودجی ها پالودن خود این زنگار از روح آین پاک شدن این یکی از معجزات عشقه یکی از کارهای عشقه که در اینجا مولانا داده به مولانا مولانا رو اشک در عشق در گذریات همه داره اصلا غیر از اشک. چیزی نداره اون شمس تبریزی چه بهش خیلی علاقه داره پیام آور که این آدم این اش تو دا عین دانی تراقم ماز نیش زنگار از روش ممتاه نیست این اش تمیز میکنه اینو و فون دیگر دیگه اش کیه فون فوره اش دوای علت های دو, دو تا در همه هم یه چی پالایشگری مداواز دوا کنه ای دوای جمله علت های ما علت بیماریه دوای بیماری های روحیه یکی هم عشق میراد جره عشق نردبانه بالا تو سر با سنبل بالا روی کن بنافشه تو یک پس منجر میخواد بالا بره بالا پر میده و تو بالا میبره این دو چیزی که در عشق مکتب مولانا در غزلیاتش چیز میکنه برای اینکه هم به آخر چیز رسیدی و هم خیال شما خود مدرس چند بیت از مولانا را جبه عشق اینجا میخونم دقت پرخم من در راه عشق براب چشم من پل می توان شد از نابترین گذل های مولان ز عشق خون همچون اطلس من که عشق را ظلمی توان شد براغ عشق براغ همونی که میراد بوده جیسون ز عشق خون همچون اطلس من براغ عشق را جل می توان کرد ز هر حلقه از اون زلفین پربند پی جردنچشان می توان کرد تو دریایی و من یک قطره ای جان ولیکن جز را کل میتوان شد تو گاف قندی و من لام لبترخ تو گاف و لام ما گل میتوان شد رهی دور است جان من پیاده ولی دل را تو دلدل میتوان شد با دلدل دل لسیده حرکت لسیده اش کاش ٹیلی پورٹ تر در کف نہد بومی کنت ببین اش کاش انشیر انشیر اش کاش ٹیلی پورٹ تر بومی کنت چون خوش نباشد اون دلی کو جشت دستم او شاهان همه مسکین او خوبان قراز تین او شیران زده دم بر زمان پیش سگان کوی او بنگرگیچی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برد و بر روی او ای ماه رویش دیده ای خوبی از او دزدیده ای ای شب تو ظلفش دیده ای نی نی و نی یک موی او یک مویشم ندیدی مر اشک را خود پشت کو سر تو به سر روی است رو این پشت رو این سو بود جز رو نباشد سوی او آخر چه بوده ای به شمس خطاب میکنه آخر چه بوده ای چه بو. بوده از اصل تو آخر چه گوهری چه بود از کان تو دلاله عشق بود و مرا سوی تو چشید اول گلام عشقم و اونجا گلام تو قنها دست بر دل پرخون که آن چیست هر چند شرم بود گفتم چزان تو هر چه بوی کرد من بوی خویش رافت گفتم نکون جر چه تنینم بدان تو چون آینه است آلم نقش چمال اشک است ای مردمان چه دیده است جذوی زی زکر زیاده یک دسته چلید است به زیر بغل عشق از بهر گشاییدن ابواب رسید است تمام درهای بسته را میتونه باز بکنه شاهچلید دستوس عبرها آبستن از اشک ما زی ابر اشک هم آبستنیم عبرها آبستن از دریاه اشک ما ز ابر اشک هم آبستنیم آبستن عشق آبستنی. هست در آسمان پریدن صد پرده به هر نفس دریدن هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست ما به فلچ میرویم داره میراده اشک عشق میرادگره از تماشا چراست ما به فلچ بوده ایم یار ملچ بوده ایم باز همان رویم جمله چه آن شهر ماست در چف عشق است مهاره همه در چف عشق است همه اشتر مستیم همه زیر بار گاه و شیری متمثل شود تا برمد خلق از او چون شکار گاه آبی متشکل شود خرب رود تشنه بدو سپار اینم بخونم تمام بکنم با من عشق امتحان ها میکنی واقفی برعظم اما میکنی هم تو اندر بیشه آتش میدنی هم شکایت را تو پیدا میکنی من دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم فیش می کنم چه با این بیان عجل هم تغانستم این نسته رو بیستا انتقال بدن چه اون راه بی راهی چه دستگان مادر مفسید مستوی رفتن و نمی دارم بحث های عجیب و غریبه درخان نظری دور است از مشرب مولانا و مشرب مولانا است با شفافیت رخشندجی جلال و جرمای خاص خودش اون به اصطلاح شمس میجه یختار عبدالعزیز و او اونا بون سر سرد بوی مرده میده هم سرد سرما سر اونجا هوا سرده هوای سرد هوای اون مباحث مباحثه این خود بی خیلی بیشتر از اینجا در سردون نبذارم مذرت برو خیلی <تصفيق> ترمیش